اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون به نام خداوند بخشنده بخشایشگر فرمان خدا برای مجازات مشرکان و مجرمان فرارسیده است برای آن عجله نکنید منزه و برتر است خداوند از آنچه چه همتای او قرار میدهند ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء على من, يشاء من عباده أن أنذرو أن أنذرو أن له لا إله إلا أنا فاتقون را با روح الهی بفرمانش، بر هر کس از بندگانش بخواهد نازل می کند و به آنها دستور می که مردم را انظار کنید و بگویید معبودی جز من نیست از مخالفت دستور من بپرهیزید خلق السماوات والارض بالحق آسمان ها و زمین را به حق آفرید او برتر است از اینکه همتایی برای او قرار میدهند. خلق الانسان من نطفه فاذا فا هو خصيم انسان را از نطفه بی ارزشی آفرید و سرانجام او موجودی فسیح و مدافع آشکار از خویشتن گردید والانعام خلقها لكم فيها دفئ ومنافع ومنها چهار پایان را آفرید در حالی که در آنها برای شما وسیله پوشش و منافع دیگری است و از گوشت آنها میخورید ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون و در آنها برای شما زینت و شکوه است به هنگامی که آنها را به استراحتگاهشان باز میگردانید و هنگامی که صبحگاهان به صحرا میفرستید. و تحمل و اسقالكم الی بلدی لم تكونوا بالغیه الا بشق الانفس ان ربکم لراؤوف الرحیم آنها بارهای سنگین شما را به شهری حمل میکنند که جز با مشقت زیاد به آن نمیرسیدید. پروردگارتان رعوف و رحیم است که این وسایل حیات را در اختیارتان قرار داده لتركبوها ما لا تعلمون. همچنین اسبها و استرها و علاقها را آفرید تا بر آنها سوار شوید و زینت شما باشد و چیزهایی می آفریند که نمی دانید و علی الله قصد السبیل و منها جائر ولو شاء لهداكم اجمعین و خداست که راه راست را به بندگان نشان دهد اما بعضی از راه ها بی راه است و اگر خدا بخواهد همه شما را به اجبار هدایت میکند ولی اجبار سودی ندارد هوالذین انزلنا من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون او کسیست که از آسمان آبی فرستاد که نوشیدن شما از آن است و گیاهان و درختانی که حیوانات خود را در آن به چرا میبرید نیز از آن است یونبیت لکن بهی الزرع و الزیتون و النخیل و و من الثمرات خداوند با آن آب باران برای شما زراعت و زیتون و نخل و انگور و از همه میوه ها می رویاند. مسلما در این نشانه روشنی برای اندیشمندان است وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ او شب و روز و خرشید و ماه را مسخر شما ساخت و ستارگان نیز به فرمان او مسخر شما هند. در این نشانه است از عظمت خدا برای گروهی که عقل خود را بکار می گیرند وما ذرع لکن فی الارض مختلفاً الوانه این نفی ذالک لآیت علاوه بر این مخلوقاتی را که در زمین به رنگهای گوناگون آفریده نیز مسخر فرمان شما ساخت در این نشانه روشنی است برای گروهی که متذکر میشوند وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا وتستخرجوا منه حليه تلبسونها و تستخرجو منه حلیتا تلبسونها و تر الفلک مواخر فیه ولی تبتغو من فضله ولعلكم تشکرون او کسیست که دریا را مسخر شما ساخت تا از آن گوشت تازه بخورید و زیوری برای پوشیدن مانند مروارید از آن استخراج کنید و کشتی ها را میبینی که سینه دریا را میشکافند تا شما به تجارت پردازید و از فضل خدا بهره گیرید شاید شکر نعمتهای او را به جا آورید و القا فی الارض رواسی تميد بكم و انهارا و سبولا لعلكم تهتدون و در زمین کوهای ثابت و محکمی افکند تا شما را نلرزاند و نهرها و راه ایجاد کرد تا هدایت شوید. و علامات و بن هم و نیز علاماتی قرار داد و شب هنگام به وسیله ستارگان هدایت می شبند. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون آیا کسی که این گون مخلوقات را می آفریند همچون است که نمی آفریند آیا متذکر نمیشوید؟ شوید؟ و این تعدو نعمت الله لا تحصوها این الله لغفور و اگر نعمتهای خدا را بشمارید، هرگز نمی آنها را احسا کنید. خداوند بخشنده و مهربان است. والله یعلم ما تسرون و ما خداوند آنچه را پنهان می دارید و آنچه را آشکار میسازید سازید می والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون معبودهای را که غیر از خدا میخوانند چیزی را خلق نمی کنند بلکه خودشان هم مخلوق اند اموات غیر احیاء و يشعرون ايانا يبعثون آنها مردگانی هستند که هرگز استعداد حیات ندارند و نمی دانند عبادت کنندگانشان در چه زمانی محشور می شوند اله, اله واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم هم وهم مستكبرون. مستکبرون معبود شما خداوند یگانه است اما کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند، حق را این کار می کند و مستكبرند. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون و ما يعلنون، انه لا يحب المستكبرين. ات خداوند از آنچه پنهان میدارند. و آنچه آشکار می سازند با خبر است او مستکبران را دوست نمی دارد و اذا قیل لهم ماذا انزل ربهم قالوا قالوا اساطير و هنگامی که به آنها گفته شود پروردگار شما چه نازل کرده است میگویند اینها وحی الهی نیست همان افثاله های دروغین پیشینیان است. لیحملو اوزارهم كاملتين يوم القیامت ومن من اوزار و من اوزار الذین يضلونهم بغیر علم الاساء ما يزرون؟ آنها باید روز قیامت همبار گناهان خود را به طور کامل بردوش کشند و هم سهمی از گناهان کسانی که به خاطر جهل گمراهشان میسازند بدانید آنها بار سنگین بدی بردوش دوش میکشند قد که الذین من قبلهم فأت الله بنيانهم من القواعل فخر عليهم فَخَرْ وَعَلَيْهِمُ السَّقُفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ کسانی که قبل از ایشان بودند نیز از این توطعهها داشتند ولی خداوند به سراغ شالوده زندگی آنها رفت و آن را از اساس ویران کرد و سخت از بالا بر سرشان ریخت و عذاب الهی از آن جایی که نمیدانستند به سراغشان آمد ثم یوم القیامت یخزیهم و یقول این و و یقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیهم قال الذین اوت العلم این الخزی اليوم و على الكافرین سپس روز قیامت خدا آنها را رسوا میسازد و میگوید. شریکانی که شما برای من ساختید و به خاطر آنها با دیگران دشمنی می کردید کجا هستند؟ در این هنگام کسانی که به آنها علم داده شده می گویند و بدبختی امروز بر کافران است الَّذِينَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ غَالِمِ اَنفُسِهِمْ فالقاوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون همانها که فرشتگان مرگ روحشان را میگیرند در حالی که به خود ظلم کرده بودند در این موقع آنها تسلیم میشوند و به دروغ میگویند ما کار بدی انجام نمیدادیم آری خداوند به آنچه انجام میدادید عالم است فادخلو ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثو المتكبرین به آنها گفته میشود اکنون از درهای جهنم وارد شوید در حالی که جاودانه در آن خواهید بود چه جای بدیست است جایگاه مستکبران وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خیرا للذین احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خیر ولن اعمدار المتقین ولی هنگامی که به پرهیزگاران گفته میشد، پروردگار شما چه چیز نازل کرده است می گفتند خیر و سعادت آری برای کسانی که نیکی کردند در این دنیا نیکی است و سرای آخرت از آن هم بهتر است و چه خوب است سرای پرهیزگاران جنات عدنی یدخلونها تجری من تحتی الانهار لهم فی ها ما یشاؤن کذالک یجزی الله المتقین باخهایی از بهشت جاویدان است که همگی وارد آن میشوند نهرها از زیر درختانش میگذرد. هر چه بخواهند در آنجا هست خداوند پرهیزگاران را چنین پاداش میدهد. الّذین توفّاهُم الملائکةُ طیبین یقولون یقولون سلامٌ علیکم دخولُ الجنةِ بما کنتم تعملون همانها که فرشتگان مرگ روحشان را میگیرند. در حالی که پاک و پاکیزه به آنها میگویند سلام بر شما وارد بهشت شوید به خاطر اعمالی که انجام میدادید هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن, كانوا ولكن كانوا انفسهم يظلمون آیا آنها انتظاری جزین دارند که فرشتگان قبض ارواح به سراغشان بیایند یا فرمان پروردگارت برای مجازاتشان فرارسد. آنگاه توبه کنند ولی توبه آنها در آن زمان بی اثر است آری کسانی که پیش از ایشان بودند نیز چنین کردند خداوند به آنها ستم نکرد ولی آنان به خیشتن ستم می‌نمودند فاصابهم سیئات وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. و سرانجام بدیهای اعمالشان به آنها رسید و آنچه را از وعده های عذاب استهزامی کردند آنان وارد شد و قال الذین اشرفو لو شاء الله ما عبدنا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شیئن نحن ولا آباؤنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذین من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبین مشرکان گفتند اگر خدا میخواست نه ما و نه پدران ما غیر او را پرستش نمی کردیم و چیزی را بدون اجازه او حرام نمی آری، کسانی که پیش از ایشان بودند نیز همین کارها را انجام دادند ولی آیا پیامبران بران جز ابلاغ آشکار دارند؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الْطَابُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که خدای یکتا را بپرستید و از تاقوت اجتناب کنید خداوند گروهی را هدایت کرد و گروهی زلالت و گمراهی دامانشان را گرفت پس در روی زمین بگردید و ببینید عاقبت تکذیب کنندگان چگونه بود این تحرص علی هداهم فا الله لا یهدی من یضل و ما لهم من ناصرین هر قدر بر هدایت آنها حریص باشی. سودی ندارد چرا که خداوند کسی را که گمراه ساخت هدایت نمی‌کند و آنها یاورانی نخواهند داشت وانقسم بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حق ولكن اكثر الناس لا يعلمون انها سوگندهای شدید به خدا یاد کردند که هرگز خداوند کسی را که میمیرد بر نمی انگیزد آری این وعده قطعی خداست که همه مردگان را برای جزا باز میگرداند ولی بیشتر مردم نمی دانند ولی علم ولی علم الذین کفروا انهم کانو کاذبین هدف این است که آنچرا در آن اختلاف داشتند برای آنها روشن سازد و کسانی که منکر شدند بدانند دروغ می گفتند اینما قولنا لشیئین اذا اردناه ان نقول له کن فیكون واستخیز مردگان برای ما مشکل نیست زیرا وقتی چیزی را اراده می‌کنیم فقط به آن می‌گوییم موجود باش بلافاصله موجود می‌شود والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا نبوأن لهم فی الدنيا حسنه ولا اجر الاخرة اکبر لو كانوا علمون. آنها که پس از ستم دیدن در راه خدا هجرت کردند در این دنیا جایگاه و مقام خوبی به آنها میدهیم و پاداش آخرت از آن هم بزرگتر است اگر میدانستند. آنها کسانی هستند که صبر و استقامت پیشه کردند و تنها بر پروردگارشان توکل میکنند کنند. و ما من و پیش از تو جز مردانی که به آنها وحی می کردیم نفرستادیم. اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید. بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ از آنها بپرسید که از دلایل روشن و کتب پیامبران پیشین آگاهند. و ما این ذکر قرآن را بر تو نازل کردیم تا آنکه را که به سوی مردم نازل شده است برای آنها روشنایی و شاید اندیشه کنند افا من الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم او ياتيهم او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون آیا توت گران از این ایمن گشتند که ممکن است خدا آنها را در زمین فرو برد و یا مجازات الهی از آنجا که انتظارش را ندارند به سراغشان آید او في تقلبهم فما هم یا به هنگامی که برای کسب مال و ثروت افزونتر در رفت و آمدند دامانشان را بگیرند در حالی که قادر به فرار نیستند او یأخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف رحيم <تصفيق> يا به طور تدریجی با هشدارهای خوفانگیز آنان را گرفتار سازد چرا که پروردگار شما رؤوف و رحیم است اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمال سجدا, سجدا لله وهم آیا آنها مخلوقات خدا را ندیدند که سایه هایشان از راست و چپ حرکت دارند و با خضوع برای خدا فکنده میکنند. وللله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه والملائكه والملائكه وهم لا نه تنها سایه ها بلکه تمام آنچه در آسمان ها و زمین از جنبندگان بندگان وجود دارد و همچنین فرشتگان برای خدا سجده میکنند و تکبر نمی ورزند. خافون ربهم من فوقهم و ما آنها تنها از مخالفت پروردگارشان که حاکم بر آنهاست میترسند و آنچه را دارند انجام می دهند. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فايا فا يفرهبون خداوند فرمان داده دو معبود برای خود انتخاب نکنید معبود شما همان خدای یگانه است تنها از کیفر من بترسید وله ما فی السماوات والارض وله الدین واصبا افغیر الله تتقون آنچه در آسمان ها و زمین است ازان اوست و دین خالص نیز هموار ازان او می باشد آیا از غیر او میترسید؟ وما و ما من نعمت فمن الله ثُمَّ إذا مَسَّقُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ آنچه از نعمتها دارید همه از سوی خداست و هنگامی که ناراحتی به شما رسد فقط او را میخوانید ثُمَّ اِذَا عنكم الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ اِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ اما هنگامی که ناراحتی و رنج را از شما برطرف می سازد ناگاه گروهی از شما برای پروردگارشان همتا قابل می تعلمون بگذار تا نعمتهایی را که به آنها داده ایم کفران کنند اکنون چند روزی از متاع دنیا بهره گیرید اما بهزودی خواهید دانست سرانجام انجام کارتان به کجا خواهد کشید و یجعلون لما لا يعلمون مما رزقناهم تالله آنان برای بطهایی که هیچ گونه سود و زیانی از آنها سراغ ندارند سهمی از آنچه به آنان روزی داده ایم قرار می دهند. به خدا سوگند در دادگاه قیامت از این افتراها که می بندید باز پرسی خواهید شد و و آنها در پندار خود برای خداوند دختران قرار می دهند. منرزه است از این که فرزندی داشته باشد ولی برای خودشان را میل دارند قائل میشوند. بشر ظل وجهه مسودا وهو در حالی که هرگاه به یکی از آنها بشارت دهند دختر نصیب تو شده صورتش از فرط ناراحتی سیاه می شود. و بیشترت خاشعین میکردت. يتوارى من القوم من سوء ما بشير به ايمسكه على هون ام يدوسه في التراب. ألا سا ما يحكمون. بخاطر خاطر بشارت بدی که به او داده شده از قوم و قبیله خود متواری میگردد و نمیداند. آیا او را با قبول ننگ نگه دارد یا در خاک پنهانش کند آگاه باشید که بد حکم می‌کنند للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزیز الحکیم برای آنها که به سرای آخرت ایمان ندارند صفات زشت است و برای خدا صفات آلی است و او قدرتمند و حکیم است ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک عليها من دابت ولكن یؤخرهم إلى اجل مسمى فَإِذَا فا جَاءَ عَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَهُ وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ و اگر خداوند مردم را به خاطر ظلمشان مجازات می کرد ای را بر پشت زمین باقی نمی گذارد ولی آنها را تا زمان معینی به تأخیر می اندازد و هنگامی که عجلشان فرارسد ن صاعاتی تأخیر می کنند و نساعتی پیشی میگیرند. و يجعلون لله ما يكرهون وتصف السنههم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. آنها برای خدا چیزهای قرار میدهند. که خودشان از آن کراحت دارند فرزندان دختر با این حال زبانشان به دروغ میگوید سرانجام نیکی دارند به ناچار برای آنان آتش است و آنها از پیشگامان دوزخند تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزین لهم فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم الیوم ولهم عذاب علیم به خدا سوگند به سوی امتهای پیش پیام برانی فرستادیم اما شیطان اعمالشان را در نظرشان آراست و امروز او ولی و سرپرستشان است و مجازات دردناکی برای آنهاست ومازلَّ عليك الكتاب إلا للتوبين له م الذي اختفوف ووحود وود ورحمة لقوم يؤمنون ما آن را بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه آنچه در آن اختلاف دارند برای آنها روشن کنیم و این خورآن مایه هدایت و رحمت است برای قومی که ایمان میآورند والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون خداوند از آسمان آبی فرستاد و زمین را پس از آنکه مرده بود حیات بخشید در این نشانه روشنی است برای جمعیتی که گوش شنوا دارند و ان لکم فی الانعام عبره نسقیکم مما فی بطونه من بین فرث و دم لبن خالصا لبنن خالصا سائی و در وجود چهار پایان برای شما درس‌های عبرتی است از درون شکم آنها از میان غذاهای هزم شده و خون شیر خالص و گوا را به شما می نوشانیم. و من ثمرات النخیل والأعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا این نفی ذالک لآیت لقوم یعقلون و از میوه های درختان نخل و انگور مسکرات و روزی خوب و پاکیزه میگیرید در این نشانه است. برای جمعیتی که اندیشه می‌کنند. و آوح ربک ایل نحل آن اتخذی من الجبال بیوت و الشجر و ما و ما یعرشون. و پروردگار تو به زنبور اصل واهی نمود که از کوه‌ها و درختان و داربستهایی ای که مردم می‌سازند. ثم كل من كل ثمرات فسلك سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء فيه شفاء للناس سپس از تمام سمرات و شیره گلها بخور و راه هایی را پروردگارت برای تو تعییم کرده است به راحتی بپیما از درون شکم آنها نوشیدنی با رنگهای مختلف خارج می شود که در آن شفا برای مردم است به یقین در این امر نشانه روشنی است برای جمعیتی که می اندیشند والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكيلا لیکی لا یعلم بعد علم شیئا، این الله علیم قدیر خداوند شما را آفرید سپس شما را می میراند. بعضی از شما به نامطلوب ترین سنین بالای عمر می رسند تا بعد از علم و آگاهی چیزی ندانند و همه چیز را فراموش کنند خداوند دانا و تواناست والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ایمانهم فهم فيه سواء اف الله يجحدون خداوند بعضی از شما را بر بعضی دیگر از نظر روزی برتری داد چرا که استعدادها و تلاشهایتان متفاوت است اما آنها که برتری داده شدهاند حاضر نیستند از روزی خود به بردگانشان بدهند و همگی در آن مساوی گردند آیا آنان نعمت خدا را انکار می نمایند؟ و الله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم, وجعل لكم من ازواجكم بنین و حفدتا و رزقكم من الطیبات افب الباطل یؤمنون و الله هم یکفرون خدابند برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوههایی به وجود آورد و از پاکیزه ها به شما روزی داد آیا به باطل ایمان می آورند و نعمت خدا را انکار می کنند و یعبدون من دون الله ما لا يملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا و لا آنها غیر از خدا موجوداتی را می پرستند که هیچ رزقی را برای آنان از آسمانها و زمین در اختیار ندارند و توان این کار را نیز ندارند فلا جا غبون الله الأمزِ الله علم و لا دملت پس برای خدا امسال و شبیهها قائل نشوید خدا میداند و شما نمیدانید ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منه رزقا حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا یعلمون خداوند مثالی زده برده مملوکی را که قادر بر هیچ چیز نیست و انسان با ایمانی را که از جانب خود رزقی نیکو به او بخشیده ایم و او پنهان و آشکار از آنچه خدا به او داده انفاق می کند آیا این دو نفر یکسانند؟ ستایش مخصوص خداست، ولی اکثر آنها نمی دانند. و ضرب الله مثلا رجلین احدهما أحدهما لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن بالعدل وهو على صراط مستقیم خداوند مثالی دیگر زده است. دو نفر را که یکی از آن دو گنگ مادر زاد است و قادر بر هیچ کاری نیست و سربار صاحبش می باشد. او را در پی هر کاری بفرستد خوب انجام نمیدهد. آیا؟ چون این انسانی با کسی که امر به عدل و داد می و بر راهی راست قرار دارد برابر است ولله غیب السماوات والأرض وما أمر امر إلا الا البصر أو هو اقرب این الله على كل شيء قدیر به آسمان ها و زمین مخصوص خداست و او همه را میداند و امر قیامت درست همانند چشم برهم زدن و یا از آن هم نزدیکتر چرا که خدا بر هر چیزی تواناست و الله اخرجكم من بطون امبهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار لعلكم و خداوند شما را از شکم مادرانتان خارج نمود در حالی که هیچ چیز نمیدانستید و برای شما گوش و چشم و عقل قرار داد تا شکر نعمت او را به جا آورید الَمْ يَرَوْا إلى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فی جو السَّمَاءِ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ آنها به پرندگانی که بر فراز آسمان ها نگاه داشته شده اند نظر نياب کندند هیچ کس جز خدا آنها را نگاه نمی‌دارد در این امر نشانه هایی از عظمت و قدرت خداست برای کسانی که ایمان می و والله جعل لكم من بيوتكم و وجعل لكم وجعل لكم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها تستخفونها يوم ضعنكم و يوم اقامتكم و من اصوافها و من اصوافها و اوبارها و اثاثا و الى حین و خدا برای شما از خانه هایتان محل سکونت و آرامش قرار داد و از پوست چهار پایان نیز برای شما خانههایی قرار داد که روز کوچ کردن و روز اقامتتان به آسانی می توانید آنها را جابجا جا کنید و از پشم و کرک و موی آنها برای شما اساس و متاع و وسایل مختلف زندگی تا زمان معینی قرار داده والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون خداوند از آنچه آفریده است سایه هایی برای شما قرار داده و از کوه ها پناهگاه هایی و برای شما پیراهن هایی آفریده که شما را از گرما و سرما حفظ می کند و پیراهن هایی که به هنگام جنگ حافظ شماست این گونه نعمت هایش را بر شما کامل می کند شاید تسلیم فرمان او شوید البلاغ المبین. با این همه اگر روی برتابند تابند نگران مباش تو فقط وظیفه ابلاغ آشکار داری يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها ثم ينکرونها و اکثرهم الكافرون آنها نعمت خدا را میشناسند سپس آن را انکار میکنند و اکثرشان کافرند و یوم نبعث من كل امت شهیدا ثم لا يؤذن للذین ثم لا يؤذن للذین کفرون ولا هم يستعتبون به خاطر بیاورید روزی را که از هر امتی گواهی بر آنان برمیانگیزیم. سپس به آنان که کفر ورزیدند اجازه سخن گفتن داده نمیشود، و نیز اجازه عذرخواهی خواهی و تقاضای عفو به آنان نمیدهند و اذا را الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون و هنگامی که ظالمان عذاب را ببینند نه به آنها تخفیف داده میشود و نه مهلت و اذا را الذين اشركوا شركاءهم قالوا قالوا ربنا ها اولائي شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون ما هندامي كه مشرکان معبودهایی را که همتای خدا قرار دادند میبینند میگویند پروردگار را اینها همتایانی هستند که ما به جای تو آنها را میخندیم. در این هنگام معبودان به آنها میگویند: شما دروغگو هستید. شما هوای نفس خود را پرستش میکردیم. و القو الله يومئذن السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون و در آن روز همگی ناگزیر در پیشگاه خدا تسلیم میشوند و تمام آنچرا نسبت به خدا دروغ میبستند گم و نابود می شود. <سلام آبس square> الّذین کفروا و عن سبیل الله زیدناهم زیدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا یفسدون کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند به خاطر فسادی که می کردند عذابی بر عذابشان می افزاییم و نبعث فی کل امت شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك بک شهیدن علی وونزل عليك الكتابی بیالی گلیشعی ووه وهوده او و رحمت او و آورید روزی را که از هر امتی گواهی از خودشان برانها بر آنها برمیندیزییم و تو را گواهه بر آنان قرار میدهیم و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است این الله یأمر بالعدل والاحسان و ایدائی دلقربا و, ينها و ينها عن الفحشاء والمنكر والبغی یعظه کم خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می دهد و از فحشاب و منکر و ستم نهی می کند خداوند به شما اندرز می دهد شاید متذکر شوید. و اوفو بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد وقد و وقد جعلتم, جعلتم الله عليكم کفیلا این الله يعلم ما تفعلون و هنگامی که با خدا عهد بستید به عهد او وفا کنید و سوگندها را بعد از محکم ساختن نشکنید در حالی که خدا را کفیل و زامن و گند خود قرار دادید. به یخین خداوند از آن که انجام می دهید آگاه است. ولا تكونوا كَلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَافَا أَنْكَافَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْتَكُونَ ن تكون امة ه أربا من امة انما یبلوكم الله به ولبینن لكم يوم القیامة ما كنتم ه تختلفون همانند آن زن سبك مغز نباشید که پشمهای تابیدهٔ خود را پس از استحكام وامیتابید در حالی که سوگند و پیمان خود را وسیله خیانت و فساد قرار می‌دهید، به خاطر اینکه گروهی جمعیتشان از گروه دیگر بیشتر است، خدا فقط شما را با این وسیله آزمایش می‌کند و به یقین روز قیامت آنچه را در آن اختلاف داشتید برای شما روشن می‌سازد. وَلَوْ شَاءَ الله لجعلكم أُمْبَةً وَاحِدَةً ولكن وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ و اگر خدا میخواست همه شما را امت واحدی قرار میداد و همه را به اجبار وادار به ایمان می کرد. اما ایمان اجباری فایده ای ندارد ولی خدا هر کس را بخواهد و شایسته بداند گمراه و هر کس را بخواهد و لایق بداند هدایت می کند. به گروهی توفیق هدایت داده و از گروهی سلب می کند و یقیناً شما از آنچه انجام میدادید بازپرسی خواهید شد ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم سوگندهایتان را وسیله تقلب و خیانت در میان خود قرار ندهید مبادا گامی بعد از ثابت گشتن بر ایمان متزلزل شود و به خاطر بازداشتن مردم از راه خدا آثار سوء آن را بچشید و برای شما عذاب عظیمی خواهد بود ولا الله انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون هرگز پیمان الهی را با بهای کمی مبادله نکنید آنچه نزد خداست برای شما بهتر است اگر می‌دانستی نزدكم ينفذ وما عند الله باق ولا ناجزيا ان الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا باحسن ما كانوا يعملون. آنچه نزد شماست فانی میشود اما آنچه نزد خداست باقی و به کسانی که صبر و استقامت پیشه کنند مطابق بهترین اعمالی که انجام میدادند حداش حاّین داد. من عمل صالح من ذکر، او آنثا و هو مؤمن فلنحيينه نحیّنه، فل نحیّنه حیات طیبه، لهم اجرهم باحسن ما کانو یعملون. هرکس کار شایسته انجام دهد. خواه مرد باشد یا زن در حالی که مؤمن است او را به حیاتی پاک زنده می و پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام می‌دادند خواهیم داد فا اذا قرأت القرآن فاستعید بالله من الشيطان انگامی که قرآن می از شر شیطان مطرود بِخُدا قَناه قَف. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ او بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل میکنند تسلطی ندارد. إِنَّمَا سُلْطَانُهُ على الذین يَتَوَلَّوْنَهُ والذین هم بِهِ مُشْرِکُونَ. تسلط او تنها بر کسا است که او را به سرپرستی خود برگزیدهاند و آنها که نسبت به او خدا شرک میبرزند و اذا بدلن آیت مکان آیت و الله اعلم بما ينزل قالوا قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا یعلمون و هنگامی که آیه ای را به آیه دیگر مبدل کنیم و خدا بهتر می داند چه حکمی را نازل کند آنها می گویند تو افترا بندی اما بیشترشان حقیقت را نمی دانند قل لزنه روح القدس من ربی بالحق ليثبت الذين آمنوا و بگو روح القدس آن را از جانب پروردگارت به حق نازل کرده تا افراد با ایمان را ثابت قدم گرداند و هدایت و بشارتی باشد برای عموم مسلمانان. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجميون وهذا لسان عربي مبين ما میدانیم كه آنها میگویند این آیات را انسانی به او تعلیم میدهد. در حالی که زبان کسی که اینها را به او نسبت میدهند عجمی است ولی این قرآن زبان عربی آشکار است. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب به یقین کسانی که به آیات الهی ایمان نمیآورند خدا آنها را هدایت نمی کند و برای آنان عذاب دردناکی است. الكذب لا يؤمنون الله هم الكاذبون تنها کسانی دروغ میبندند که به آیات خدا ایمان ندارند آری دروغگویان واقعی آنها هستند من کفر بالله من بعد ایمانه ایلا إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم کسانی که بعد از ایمان کافر شوند به جزء آنها که تحت فشار واقع شدهاند در حالی که قلبشان آرام و با ایمان است آری، آنها که سینه خود را برای پذیرش کفر گشوده اند قذب خدا بر آنهاست و عذاب عظیمی در انتظارشان ذالک بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله وأن الله لا يهد القوم الكافرين این به خاطر است که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح دادند و خداوند افراد بی ایمان لجوج را هدایت نمی کند الذین طبع الله علی قلوبهم وسمعهم وابصارهم و ابصارهم و هم الغافلون آنها کسانی هستند که بر اثر فزونی گناه خدا بر قلب و گوش و چشمانشان مهر نهاده به همین دلیل نمی فهمند و قافلان واقعی همانها هستند لا جرم انهم هم و ناچار آنها در آخرت زیانکارند ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ من بَعْدِهَا لغفور رحیم اما پروردگار تو نسبت به کسانی که بعد از فریب خوردن به ایمان بازگشتن و هجرت کردند سپس جهاد کردند و در راه خدا استقامت نمودند پروردگارت بعد از انجام این کارها آمرزنده و مهربان است و آنها را مشمول رحمت خود می یوم تأتی كل نفس تجادل عن نفسها و و توفه یاد آورید روزی را که هر کس در فکر خیشتن است و تنها به دفاع از خود برمیخیزد. و نتیجه اعمال هر کسی بی کم و کاست به او داده می شود و به آنها ظلم نخواهد شد وَذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةٍ يَأْتِيهَا يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ بَاسِلَ الجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ خداوند برای آنان که کفران نعمت میکنند کنند زده است. منطقه آبادی که امن و آرام و مطمئن بود و همواره روزیش از هر جا می رسید. اما نعمتهای خدا را ناسپاسی کردند و خداوند به خاطر اعمالی که انجام می دادند لباس گرسنگی و ترس را بر اندامشان پوشانید. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَقَدَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ پیامبری از خودشان به سراغ آنها آمد او را تکذیب کردند از این رو عذاب الهی آنها را فرا گرفته در حالی که ظالم بودند فقولو مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا واشكروا الله ان كنتم تعبدون پس از آنچه خدا روزیتان کرده است حلال و پاکیزه بخورید و شکر نعمت خدا را به جا آورید اگر او را می‌پرسی. <سصفيق> <سصف> این ما حرم عليكم الميتة والدم ولحم و لحم الخنزير وما أهله لغير الله به فمن اضطر وغير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم خداوند تنها مردار خون گوشت خوک و آن را با نام غیر خدا سر اند بر شما حرام کرده است اما کسانی که ناچار شوند در حالی که تجاوز و تعدی از حد ننمایند خدا آنها را میبخشد چرا که خدا آمرزند و مهربان است ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا لتفترو على الله لكذب إن الذین يفترون على الله الكذب لا يفلحون خاطر دروغی که بر زبانتان جاری میشود نگویید این حلال است و آن حرام تا بر خدا افترا ببندید به یقین کسانی که به خدا دروغ میبندند رستگار نخواهند شد بدع قلیل است که در این دنیا نصیبشان میشود و عذاب دردناکی در انتظار آنان است و علی حرمنا ما قصصنا من قبل و ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم یظلمون چیزها را که پیش از این برای تو شرح دادیم بر یهود حرام کردیم ما به آنها ستم نکردیم اما آنها به خودشان ظلم و ستم میکردند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 نسبت به آنها که از روی جهالت بدی کرده اند سپس توبه کرده و در مقام جبران برامده اند پروردگارت بعد از آن آمرزنده و مهربان است این ابراهیم کان امته قانتا لله حلیفا ولم یکن من المشرکین. ابراهیم به تنهایی امتی بود مطیع فرمان خدا خالی از هر گونه انحراف و از مشرکان نبود شاکرا لئنعه و صراط مستقیم نعمت های پروردگار بود خدا او را برگزید و به راست هدایت نمود وآتیناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ما در دنيا به او همت نیكویی دادیم و در آخرت از نیکان است ثم أوحینا إلیك أن اتبع ملة إبراهیم حنیفا وما كان من المشركين سپس به تو وحی فرستادیم که از آینه ابراهیم که ایمانی خالص داشت و از مشرکان نبود پیروی کن. این ما جعل السبت علی اللذین اختلفوا فیه و این ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما فيما كانوا فيه اختلفون تحریم های روز شنبه برای یهود فقط به عنوان یک مجازات بود که در آن هم اختلاف کردند و پروردگارت روز قیامت در آنچه اختلاف داشتند میان آنها داوری می کند ادعوا الی سبیل ربک بالحكمة والموعظه الحسنه وجادلهم هم هي احسن این ربك هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت نما و با آنها به روشی که نیکو است استدلال و مناظره کن پروردگارت از هر کسی بهتر می داند چه کسی از راه او گمراه شده است و او به هدایت یافتگان داناتر است و ان اگر قضیتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم له خير للصابرین هرگاه خواستید مجازات کنید تنها به مقداری که به شما تعدی شده کیفر دهید و اگر شکی بای کنید این کار برای شکی بایان بهتر است وصبر و ما بالله ولا تحزن عليهم ولا تکفی ضيقیم مما يمکرون صبر کن و صبر تو فقط برای خدا و به توفیق خدا باشد و به خاطر کارهای آنها اندوهگین و دل سرد مشو و از توطعههای آنها در تنگنا قرار مگیر الله خداوند با کسانی است که تقوا پیشه کرده اند و کسانی که نیکو کارند